تاریخ، ما برگشتیم، با جهاد و عزت برگشتیم، با احکام قرآن و سنت و با نهج سلف و صالحین برگشتیم، میخواهیم خواهیم را در عصر فتنه و فساد، با عدالت الهی ممنوع سازیم، پس ای تاریخ، از عصر فساد محزون مباش، استغیان تاغیان، و از حکومت‌های ظالمان محضون ما باش محضون ما باش ما برگشتیم و انشالله هر پارچه ورقت را با خونهای متحر خود رنگین میسازیم برگشتیم گل های گل های خراسان آیا شما میخواید که رادیو صدای خلافت را از بر ببرید برنامه فکری تعلیمی و تربیهوی بچه که دختر های سطری میکنی خلاف اسلام است میتونی برمه بگی که کدام کدام دعا رو یاد داری؟ دعای خوردن دعای از خو دعای خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام بر است که به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله بله اینها گل های خراسانند که در کوه های خشک جنگلهای بی پایان و آوازهای های حیبتناک صلاح های ثقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و با دست دیگرشان شمشیر است در بمبوری بمباری یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بمی چیزارو نمی نمیترسی؟ نه، الحمدلله همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند انشاءالله دل گفته های اطفال خراسان دو شمب شبها از رادیو صدای خلافت <تصفيق> أضي عز من يلوين جاب الجهاد مضت دولة الإسلام صول وتحريم ملة الكفر وجمع العسكري وبعث الرعب سيولا وقلعي ما ترط من فلور من حليب أي ونكران الكفر آیا شما میخواید که رادیو صدای خلافت را از من ببرید؟ نه، هرگز نه. ما آرام نمیشیم. تاک اقرا، بگوی ش امت مظلوم و مسلمان نرسانیم. توبه کنید. توبه کنید. خب لازم که شما قدرت پیدا کنید اینو کراین کفار. به الله قسم وعده پیامبر ما الله کش شرق و غرب زمین ازان امتش می باشد مسلم کتاب الفتن و شرط صاف باب حلاب هذه امتی بعضهم ببعد حدیث فنجازار عن سو قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ان الله زواه یا الأرض فرایتو ما شرقها و ما غاربها و ملكها مأزوية لمنها الصوبان رضي الله عنه رواية كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرموت يقين انك الله جل جلاله براي من جمع کر زمين فس ديدم شخبه غرب عن ده ويقين انك قائشة من مرسد اسلامية والله كفار لا اخش ران لا اخش ران يريدون أن يطفئوا نور الله باف <تصفيق> هم. با شما باید میده دهم مگر شما رساله های اسلام نیستید مغاشه دولت های کفری چرا دهان شما رو بستن؟ آیا رسق روزی ما، مرد زندگی ما، به اختیار الله از وجل نیست؟ چرا اجرت نمی کنید؟ ای اعنمای دلسوز امت، شما حالا که خلافت قائم شد و شما ضرورت دارد چرا وصایای شیطان معنی هجرت شما می شود آیا بیعت با خلافت شما ضروری نیست آیا ما شما را خبر کردم فکر کنید فکر کنید قال تيمن تيده وخوتي وقعت شاد من ها قبل الاكبر احرق الاجساد شويه في النار منظر لم يرتسم في بنظري شريعه ربنا نور على به قل های خراسان شریعت ربینا نور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خب اطفال نازین شما را باز هم در برنامه تان خوش آمدید نگم امید است که جور و صحت و سرحال باشید خب شنونده های گرامی در برنامه امشب ما مهمان های دیگه هم آمده. که هر یکیشانه، شان به معرفی الله می خب میپرسیم از برادر اولی خود که اسمشان چی سو و از کجا هجرت کردند برادر اسم خودت چیست؟ است ماشاءالله مصعب برادر از کجا هجرت کردین از حراء برادر اسم خودت چی یاسر ماشاءالله یاسر برادر شما از کجا هجرت کردین از ماشاءالله و می سراغ برادر کوشا خود خود اسمت چیس؟ <سرح> ماشاءالله سما برادر از کجا هجرت کدیم؟ از <سرح> و اسم خودت چیز برادر؟ محمد یاسر ماشاءالله محمد یاسر برادر از کجا هجرت کدی خودت؟ سراح خوب اطفال نظرین، در این برنامه میخویم که از سیرت عمر رضی الله عنه برای کم قصه کنم، درست است؟ <بای> اسلام آوردن عمر رضی الله عنه باعث شادی و سرور مسلمین شد، داستان اسلام آوردن او از این قرار است عمر رضی الله عنه قبل زی که اسلام بیاره گفت میخوای محمد به قتل برسانم. اما وقت مردم به او گفتند که خواهر و شوهر خواهرش مسلمان شدند به شدت خشمگین شد گویا آتش وجود او را فرا گرفتند و در همین حال عظم خانه خواهرش شد و چون به خانه خواهرش رسید شنید که آیه های قرآن در آن تلاوت میشود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم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 الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراع. اینجا بود که قلب عمر نرم شد و از خشونت و سختی به مهربانی و نرمی مبدل گردید. پرسید محمد کجاست؟ و قصد رفتن به جای را نمود که پیامبر صلی الله علیه و وسلم در آنجا ساکن بود. عمر قبل از اینکه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاید در خانه خواهرش فاطمه بنت خطاب غسل کرده و قرآن را تلاوت کرده بود و هنگامی که به خانه ارقم بن ابی ارقم رسید در نزد یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند شد و نگاه کرد سپس دوباره نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشت و گفت ای پیانبر الله به سر خطاب شمشیر خود را به کمر بسته و می آید در اینجا حمزه بن عبدالمطلب بلند شد و گفت ای پیانبر الله به او اجازه بده اگر اراده خیر داشته باشد مسلمان می شود و اگر قصد بدی داشته باشد او را به قتل می رسانم پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر رضی الله عنه اجازه ورود داد و از جایش برخاست به محض اینکه عمر را دید لباسهایش را گرفته و به شدت به طرف خود کشید و گفت ای عمر آیا به جانب اسلام نمیایی تا الله آیه های در مورد رسوایی تو نازل نکند همچنان که ولید بن مغیره را رسوا کرد عمر گفت گواهی می دهم که هیچ معبودی جز الله نیست و گواهی می دهم که تو بنده و پیامبر الله هستی ای پیامبر الله من آمدم تا به الله و پیامبرش و آنچه از جانب الله آورده ای ایمان بیاورم پیامبر صلی الله علیه وسلم تکبیر بلند گفت که یاران دانستند عمر مسلمان شده است حاضران نیز تکبیر گفتند و در آن روز مسلمانان در دو صف بیرون آمدند که در یک صف حمزه رضی الله عنه قرار داشت و در صف دیگر عمر رضی الله عنه بود قریش وقت آنها را دیدند به شدت ناراحت شدند و در آن روز پیانبر صلی الله علیه وسلم عمر را فاروق نامید چون الله متعال به وسیله او قدرت اسلام را ظاهر کرد و میان حق و باطل فرق گذاشت و این گنا الله متعال اسلام را با عمر رضی الله عنه عزت و اقتدار بخشید و عمر رضی الله عنه با گروه اولین مردان اسلام پیوست خب اطفال نازنین امید است که از سیرت عمر رضی الله عنه یک چیز درس گرفته باشیم. خب میریم و از برادر خود احمد میپرسیم که به برنامه خود چی آوردن. احمد برادر برای شنونده ها چی تافاوردی دعوت الاله ماشا الله، دعوت ایلاله را میشه که بشنانده ها بیان کنی؟ بله بیان کنی؟ اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الکریم ای مردم ارفاه مرا کنی و بشنوی الله تعالی کامیابی من را و کامیابی شما را کامیابی تماما انسانه در دین کامل خودش قرار داده دین چیست؟ ار حکم الله و طریقه رسول الله سلیم انجام بده اراد دین میگود و بانیاد دین لا اله الا الله محمد رسول الله جزاک الله خیر. خب میرم و از عبدالله برادر میپرسیم که به شنونده چی توفی را آماده ساختن خب عبدالله برادر چقدر مدت میشه که شما به در الخلافه کردین؟ در اما عبدالله برادر شما در سرزمین خلافت چی کارایی را انجام میتین؟ نماز میخوانی، سبر میخوانی، مدرسته میری، جهات میری، هشکه میری جزاک الله خیر خب برادر برای کسایی که زیر بیراغای طاغتی زندگی میکنن چی پیام داری؟ پیام من برای کسانه که زیر های طاغتی زندگی میکنن این از که یا در سرزمین خلافت زندگی کنند. کنان کریم میریم از مهمان خود بپرسیم که به برنامه چی آماده ساختن. خوب، از یاسر برادر میپرسیم که اسلام برنامه تعریف کنه که اسلام چی است. یاسر برادر اسلام برنامه تعریف کنند. الاسلام و انتشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و توقینیم السلات شما نماصر برپا بداریل و تعتر زکات شما زکات بدهید. متاسوم را مبادنش من روزه بیکرد و تهج البته شم حج بگویی. جزاک الله خیر. از مشهد برادر میپرسیم که سری نصره بر ما بخوانند. بزاج آن صلاهی و الفت و رعایت نصیات خلی نفیت دین الله عفو پس به به حمد که بیک و سافر اینه کان توابا. ماشاالله. میریم از برادر کوچک خود میپرسیم که سری فتح هر یاد دارن. الحمدلله داری برادر. اه ما شاء الله خب اسامه برادر چند ساله هستی خودت ساله ما الله مشاك برم بخاني بخن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب و اياك نستعين احنا سراط المستقیم سراط الذین هم تعلیم غیر مغتوب عنه و تعلیم آمین ما شاالله خود محمد یسر برادر خود در برنامه چی تافه آوردیم پس پسکار و صبحان بگویا ما شاالله بگو برشنونده ها سبحان الله و بحمدی دادی قلب و رضا نفس و زینت عرش و مدد و کلمات الله خیر میرم و از خدیجا خواهر میپرسیم سیرت عمر رضی الله عنه چی فایده گرفته شریعت ربنا نسم... خدیجا میتونی برای بگی که از سیرت عمر رضی الله عنه چی فایده گرفتی؟ بله عمر رضی الله عنه یک شخص حق بذیر بود و انسان با غیرت بود زمان که حق شنید به حق رجوع کرد و امروز خلافت حق است و هر انسان باید مانند عمر رضی الله عنه غیرت کنه و خود را به حق تسلیم کنه جزاک الله خیر خوب رقی خواهر خودت به شنوانده ها چی گفتنی داری در رابطه به سیرت عمر رضی الله عنه؟ به شنوانده ها که سیرت عمره بعد اطفال خود بیان الله خیر خب اطفال دوزداشتنی در دقایق اخیر برنامه قرار داریم بیاین که با شنونده ها الله حافظی بکنیم امید است که شنونده ها از برنامه ما خسته نشده باشند و عزی برنامه مستفید شده باشند تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما حاضر میشیم شما را به الله از وجل مسباریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ شریعت ربنا نور به نسمو علی النجم نجی به نحیا بلاد ذل منہاج تو برنامه فکری سیاسی نظامی و پس منظر نظام و نظامداری در مفاهیم شرعی در کل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 این برنامه را یک شمب شب ها و سی شمب ها از رادیو سوای خلافت فراموش نکنید متوجه باشین از مجلس بن گرفتم که تمام این سوجه های مزحکی را که اینا روی کار آوردن تا و پارلمان قلابی که به شبیه فکایی افلام کارتونی است اینا فقط خاطر عذی است و چشم ملت مسلمان افغانستانی اینا خاک بپوشن اینا میخوان شما را مشغول و مصروف بدارن امروز صادقان پاک باص مؤمنین مخلص از کذابان امروز جدا شدند آیا شما منتظر ای هستید کسانی که اشغال امریکا را مشروعیت بخشیدند کسانی که مدعی به افغانستان گویا که تجاوز امریکا با تجاوز روسا فرق داره کسانی که انوز هم سنگ جهاد انوزا به سینه میکوبند و در پارلمان نشستان مثل سیاف ربانی و هم آیا شما زونت توقود لنکونا برا شما فتوائی جهاد بدن آه چقدر زشت است که انوز توقو از کسانی داشته باشن فیلن در آقوش امریکا و پا میزنن از کسانی که بین اشغال امریکا و اشغال روز درمیانشان فرق میگذرن بس متوجه باشن ای ملتی ابروانستان موسیقی بیار بیهودی بیار نذیرا بیستی داوری قوم بس شما مشاهده همیشه که الله عز و جل دریم موقعیت ابراهیم آلے سلام اول بیزاری ابراهیم آلے از اشخاص اعلامی کن کونای معبودات با برستش گرفتند سپس ماز معبوداتشان متوجب <تواجيباش> آشن وقتی کمال کفر بالتا غضم می‌گیم، فرماید کفر بالتا غضت و یومی میللاف قدر استمسک بالعروت الوثقا لنفی ساملاها و الله و علیم الله عزوجل وقتی بیش از رمی کنه کفر و الله و شد، و الله و خیلی دانه باید خود باید ما اینا مشاهده میکنیم کسانی که تنا به زبان زم میکنن که ما از امریکا بیزار هستیم در حالی که ما مشاهده میکنیم که از امریکا از جاهای مختلف تقضیم میشون بلکه به صراحت اعلان میکنن در مصاحبه های خود کس کسی مخفی نیست که گویا اشغال امریکا و اشغال روسا فرق داره پس متوجی باشین که از این رهبران شما باید ببرین بلکه نا خود به تبدیل شدن اینا فتنه مردم شدن اینا فتنه بر کساشتن که فرنده داخل افغانستانن در نقاط مختلف افغانستان کار میکنن اینا فتنه بر او اساکی در پاریس الیبی ها علی مجاهدین میجنگن وقتی گینا کشته میشن و به جهنم میرون که وزر و گناه را با خود امیر رهبران بلید و خدیث با خود حمل میکنن که اشغال امریکا در افغانستان مشویات میدهن آه که چقدر قدر ارزش داشت کارای که میکنن پس اینا با شما بت میذاری خود اعلان کنین <تصفح> سود اسود نهدم القلاع على الكفر برق والبنون والبنون شما الله عز وجل ابراهيم السلام اول السلام اشخاص ایلان می کنک اونائی مابودات با پرستش گرفتن، سباز ماز مابودات دشان؟ و توجیباش این وقتی که ماهو کفر بالتاغوت مجیم، و ما یکفر بالتاغوت و يومیم بالله فقد استمسک بالعروت الوثقه لنفسام لها والله سمیع و علیم اللہ عز و جل وقتی بای شرمی کنک کسبت تاغوت کفر و رزید، و با اللہ عز و جل ایمان ورد و ایم و تمسک شد، ای با یک دستاویز خیل محکمی چانگ یا زیداز که کفر به طاغوت تناب به قلب نیست کفر به طاغوت مشتمل به اس که انسان باید با قلب خود با زبان خود با فعل خود با طاغوت باید کفر به ما این را مشاهده میکنیم کسانی که تناب به زبان زب می که ما از امریکا بیزار هستیم در حالی که ما مشاهده میکنیم که از امریکا از جاهای مختلف تخزم میشن بلکه به صراحت اعلام میکنن در مصائب های خود کس کسی مخفی نیست که گویا اشغال امریکا و اشغال روسا فرق داره پس متوجی باشین که از این شما باید ببرین بلکه اینا خود به تبدیل شدن اینا فتنه بر مردم شدن اینا فتنه بر کساشتن قرنده داخل افغانستانن در نقاط مختلف افغانستان کار میکنن اینا فتنه بر او اساکیر در پاریس لیبی ها علی مجاهدین میجنگن وقتی گینا کوشته با به جهنم میرون متوجه باشین که وزر و گناه اینا را با خود امیر رهبران پلید و خدیش با خود حمل میکنن که اشغال امریکا در افغانستان مشروعیت میدهن آه که چقدر قدر ارزش کارای که اینا میکنن پس اینا با شما بند میذاری خود اعلام کنین <تصفيق> سُودَنَهُ سُودَنَهُ الدُّقِّلاءَ وَنَمْحُ الحُدُودِ عَلَى الْكُفْرِ بَرَقٌ وَقَصْفَ الرُّعْمِ وَلَا تَرْكَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ أَثُمَّ لَا تُصْرُونَ أزى ما محمد رحمه الله روايات مش كده قزي خلق <تصفيق> القرآن كسي أزى كسي خيانته إش برصان كده زندان قف يا إمام هي والي زعل ماس قف ما خيانته زي والي هستم تكرب الرامي عمر إشكالار عمر إش ميدوزم قف أيها ماخذ ياجم ولا كده خلنا مش مستقيم هاي تنزكي فلا تركب للدين ظلمه فتمسكم النار كشما بركشة كذب كده ركولنا قنن ميل نكون بي فقط ميل بودن ب هو بجزر كسي ب فقط ميل نكون جريكور كونن أتمن أنتش جهنم شمار أتمن ميتشش ما باجه حنم داخل امام توجيه واسه امام احمد گفت نه گفت تو زمین ظالما هستی تو زمین ظالما هستی گفت خیر تر کنو کی است که سایه رکون گفت گفتو که سس که تو واسه شه تار میخری تار میخری به خاطری که کالا رو بدوزی و همه دركتبو حاکم ظالم کالا میدوزی یک کدام حاکم از زمانی ما محمد رحم الله حاکمی که با قران و سنت حکم میکنه اما حاکم ظالم است حتی برای می حکام از امام سفیان نقل قول میشه که یاک والامراء یاکن تدنل للامراء که امران نزدیک نشو چرا میگه بعضی علمای فاسق فاجر ایده من ایس چه خود جور کردن مناسک زینی جور کردن که ما میخوایم که بخاطر ب عمران نزدیک شیم بخاطر اینکه بتونیم که مشکلات مردم حل کنیم دقیق میگه این زینی است که فاسق و فجور به خاطر مسائل شخصی خودش امام صوفیان استوری وقتی که این ایده را سر در وقتی که مسلمان ها در شرق در ترکستان شرقی است، در سرحدات چین و در غرب در اسپانیا و در, در نزدیک کوهای پیرنی و پاریس در فرانسه است. یه شرط اسلام. لی در واقعی نداره سرزمین، اما که مردم مردم مجاهد است نظام. همه. ظلمه و فجری و فسقی بودند کی کار را میکردند خب امروز مشاهده میکنیم که اینایی که حمد اسلام بریدن پس آیا میشه به تو در مفید واقعی شود پس ما بیستم باید خام خوابات وزیفه را باید ترک باید گفه ی نظام کفری نظام هست و اون وظایف را که بارتان شرح کردم وظایف مکفره هست میدان جهاد بازار معامل میان بنده و پروردگارش هست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 پس بر باش و دقیق انتخاب کن في المر روني تلقى في تل المعاني أو بالكف مصحف وراء الشاشي سليني سيف البطولة ليا من صلت بيماني كل بك في المر روني تلقى في تل المعاني أو بالكف مصحق ورا الشاشي سليني سيف البطولة يا من صلت بي ماني طاغوت شناسي طاغوت شناسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقاة في صام لها والله سميع عليم اللهم قد خطت قد قد قد قد قد او قد عبادت قد قد قد قد قد قد قد عبادت قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد تاغوط اطاعت و متابعت. و کسی که دعوا میکنه که برله و ما ایمان داریم و تایید ایمان داریم لاکن قلبان تاغوت رو دوست داشته باشد یا زبانان. این تاغوت تاریح می کردهه باشد یا عمللا از تاغوط اطاعت می کردهه باشد یا از اونده این نواپی کردیم از اونده نواوقی ایمانت این برنامه را شنبه شب ها و چهارشنبه شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید. و ما هرگز مرتدین و منافقین را نمی بخشیم هرگز کسانی را نمی بخشیم که در مقابل دالر اینا چیزی امریکایی ایمانشان را فروختند. برای دشمنان هرگز این اجازه را نمی دهیم که آنچه که قایم کرده ایم سقوط دیهند یا آنچه را که بنا کرده ایم منهدم کنند از ما بشنوید آیا گمان میبرید ما از بین رویم؟ آیا خیال کنید که ما نابود میشویم؟ نه والله تا قیام قیامت ماندگار ما خواهیم بود ماندگار خواهیم بود زیرا که به الله واحد خوزو نموده ایم در حالی که دشمنان ما به آمریکا خوزو نموده اند ماندگار خواهیم بود چون ما به خاطر کدام هدف دنیوی نیامده ایم بلکه تنها برای ایلای کلمت الله بر آمدیم ماندگار خواهیم بود زیرا که احوال ما با جنگ شدیدتر و با ترک گسترش می یابد و عزت مخصوصی الله و رسولش و مؤمنان است